ابر آزاری برآمد باد نوروزی و زید وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید شاهدان در جلوه و من شرم سار کیسم بار عشق و مفلسی سعبست میباید کشید گهت جود از ساب روی خود نمیباید فرود باده و گل از بهای خرگه می باید خری گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید. با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به با از کریمی گویا در گوشه بویی شنید دامنی گر چاک شد در آلم رندی چه با جامعی در نیت نامی نیز می باید درید این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت وین پتابل که از زلف تو من دیدم که دید عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق گوشگیران راز آسایش تمع باید برید تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد اینقدر دانم که از شعرترش خون میچکید